بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده یک تا به نام خداوندی که هر روز و هر لحظه نعمت بزرگ سلامتیش رو شکر میکنیم و خیلی خوشحالیم که این نعمت رو بدون هیچ مننت به ما داد انشاءالله که بتونیم شاکر این نعمت عزیز باش عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت یک بار دیگه در روز چهارشنبه شنبه همینطور که بهتون قولده بودیم با ثومین قسمت. برنامه‌های آین سلامتی در خدمت شما بزرگواران هستیم همانطور که دو قسمت قبلی برنامه را دنبال کردید، در مورد قلب و عروق صحبت‌های زیادی شد. سؤالات شما عزیزان را به صورت تلفنی داشتیم. پاسخ‌های بسیار خوب و شری و ساده‌ای را از زبان استاد گرانقدر برنامه شنیدیم. امروز هم سومین قسمت رو می‌خوام باز هم با موضوع قلب و عروق ادامه بدیم چون مبحث بسیار بسیار هست. در خدمت مهمان همیشگی و دوست داشتنی برنامه اون هستیم. حضرت الله جناب آقای زیایی کارشناس ارشد هو، دکترای فقه و اصول و از همه مهمتر متخصص طب اسلامی. از سلام دارم. خسته نباشید سلام الله، سلامت باشید. خیلی خوش اومدید. سلامت باشید، ممنون. خب، در برنامه قبل در مورد تقویت چیزهایی که باعث تقویت قلب و روح شد از استاد برنامه سوالاتی رو پرسیدیم، داشتیم به قسمت‌های های بسیار مهم من پس می رسیدیم از ربایات ایشون نکات بسیار مهمی رو بما دادن اما به خاطر اینکه سوالات شما از زیاد بود مجبور شدیم بیایم روی خط های تماس تلفنی و به سآلات شما از دان رو بپرسیم من افتاد دوباره شما تلفان های برنامه که قطعا زیر نویز هم می شه براتون می خونم صفت 511 225 41 53 225 41 69 225 یک، 13 پرمکار بسیار زیادی هست. شما از طرف من به خاطر وقفه برنامه مجبوریم حداقل هر برنامه نهایتاً 10 تا از این پرمکار رو جدا می‌کنیم و میپرسیم البته اون که با موضوع برنامه در ارتباط باشه پس با پل ارتباطی 3059 ده پرمکارتون رو بر ما ارسال کنید قول میدیم که اگر موضوع برنامه همون بود بپرسیم اگر هم نبود نگه می‌داریم تا زمانی که به اون موضوع در برنامه آیین سلامتی برسیم و اون رو از خدمت استاد برنامه بپرسیم هفته پیش در مورد تقویت چیزهایی که باعث تقویت قلب و روح میشد صحبت کردیم یه چند تا روایتمون که نرسیدیم بهش دوستایم الان ادامه رو بهش. بش بسم الله الرحمن الرحیم یه سری خوراکیایی هست که تقویت قلب میاره مثلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن اکل سفر جله در سیدی جامل احادیث نور دو سی و بار این اکل سفر جله اومد حالا اکل و سفرجله قوتون للقلب الضعیف در تقویت قلبی که دارای ضعف زعف عمومیه اینجا خوردن میوه به تقویت قلب میاره به رسیده باید بینندگان و شرامندگان عزیز توجه داشته باشن پرزه به واس میاره، تنگی نفس میاره. بله. زیر آب بشورن، به رسیده‌. واسه یه بهدونش هم نباید چاقو بخوره چون در مجاورت هوا تولید سم میکنه. باید بهدونهاش هم درسته باشه. حالا تو پردیس بفرزم، بگو شما سیب رو هم تاکید درین، حالا به آب سیب تاکید درین. الان تو به اگر بخوان خود بهر و بهروی خود میوهی سیب استفاده کن با پوست باشه آجا بدون پوست اینجا بستگی داره که شخص آیا شن کلیه و سنگ کلیه به نوع سیلیکاتی داره یا نه دلسته. اگر داره پوستشو نباید بخوره پوست سیب اگر نداره اشکان نداره خب از خواهیم که اصلا براندگان عزیز عجمن حلط مشکل فنی که پیش اومد در سال تصاویر مجبور شدیم یک کارت در برنامه داشته ماشیم بام مگردیم به صحبت شیعه ناجون شما از شرد که در روایات شیعه به سندهای متعدد برای تقویت قلب برای نگهداری قلب سالم و مراقبت از قلب سالم تو بحثای رقت قلب قلب رقیق باشه رعفت و مهربانی و صمیمیت شخص حفظ شود قصاوت قلب نگیره سنگ دلی نگیره بحث تپش قلب نگیره از حیث زربان نرمال باشه از حیث فشارخون نرمال باشه از حیث شریان اصلی آورت نرمال باشه از حیث بطن راست و چپ نرمال باشه و سراخ اضافه به بتتن راست چپ درلب نبا بشه خب بنده بسیار بسیار از مل شما بزرگواران شما از که با صبر تحمل سوزننیتون ما رو تحمل می و, و بهنامه ها رو می بینید اسخخوا میکن به خاطر این قطعی ارتباط و انشااءالله دعا کنید که این قطعی ایجاد نشه من بدونم مورد قدمی دوباره میرییم سراغ صحبت های از هستم به شما از شاید که تو کتوب روایی شیعه و بعضا روایات اهل تسنن هم هست که فرمایش امیر المومنین علی علیه السلام اکل السفر سفر جل قوتون للقلب وعیف خوردن میوه به که رسیده باشه و بدون پرز باشه یعنی پرزاشو زیرا آب بشورن این تقویت قلب ضعیف میکنه و یطیب المعدت پاک و پاکیزه میکنه کنه میده را و یزک الفعاد به تو بحث مقص و مانند او تسکیه میکنه. حالا اونجا باز بحثش وسیه و یشجع الجبانه اگر آدم ترس کاذب داشه حالت جبن باشه ترسو بودن باشه حالا اینجا شجاعت میاره و یحسن الولده که که ازدواج قانونی یا شرعی کردن تو جیره قضاییشون به رسیده باشه، بچهشون زیبا در میاد تو بحث سلام عل که خصوصی عله بر حرکت برکت بریزن بعدا اگر خدا بخواد اینا بچه دار بشن بچهشون زیبا در میاد. این هم اصلا روایات خاصه داریم که معصوم فرموده می این بچه زیباست است به خاطر اینکه پدرمودرشون تو جیره قضایی به طاح خودمون تو تخصصی تغضیه، در سرد قضایی خانوار به بوده حالا تا اینجا که خوندم و یو شجع جبان به نسخه وسالشیه حضرت آیت الله محدث بزرگواش حر عاملیه اما این آخر روایت و یو حسن تا اینجا در کتاب کافی شیخ کلینی دوتای اول وسالشیه این آخر داره اما در کتاب کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 35 حدیث 1 و وسائل طبعه آلالبه جلد 25 صفحه 165 حدیث 31.537 این آخر روایت رو نداره نداره. یکی دیگه از چیزهایی که قلب آدمی رو جلا میده و از قلب آدمی حفاظت و نگهبانی میکنه. عسل عسل طبیعی به دست آمده از شهد گل‌های رنگارنگ خوشبو غیر سمی بحث داریم هفته پیش هم گفتیم که سمی باشه چیزی نیست این عسل طبیعی چه مشاعیرا مؤمنین العسل شفاء من کل داء ولا باثی دا به که درست مصرف بشه یقل البلغم و یجل القلب هم بلغم آدمی رو کم میکنه و هم قلب رو جلا میده تصاف فهم بودیم؟ جلای قلب از حیث گردش خون از حیث عدم وجود لخته خون از حیث از بین بردن ویروس های مزر تو بحث صدریه روی و تو بحث خون که خون آلوده نشه از حیث ویروس این هم تو بحث جلای قلب و همچنین حفاظت از قلب همچنین مؤمن شادابی قلب که گفتیم سیب معطر قرمز لبنانی امام رزای رعوف میفرمود یاجبانی اگر اینجا امام صادق علیه السلام می‌فرمایند لو علم الناس ما استفهم ما دا و مرفاهم الا به الا انه اسرع شیئا منفعتان للفؤاد خاصتا فانه یفرحه قلب انسان رو شاد میکنه به نوع شادابی طبیعی و حفظ شادابی طبیعی از حیث زعبان و عدم تپش اضافی چون گایی تپش اضافی قلب بالا میره به خاطر اینکه ششهای آدمی به حالت فیبروز رسیده مخصوصا بیمارانی که دو سوم شششون رو از دست دادن و با یک سبوم شش تنفس میکنن و حالت مهندسی معکوس یا ضعف ایمنی بدن سلول جایگزین میشه اما سلول مفیدی که جذب اکسیژن کنه و دفع دی اکسید کربون کنه پیش نمیاد. لذا چنین افرادی که تومور پشت جناق سینه دارن که بزرگ شدن و حجیم شدن و وضع پیدا کردن تومور سبب میشه که حجم ریه کم بشه و گاهی است نه. به خاطر خشکی ریه است حالت فیبراز که اینجا سلول های بنیادی سلول مفید برای ریه جایگزین نمیشه یا متوقف شده حالا علالی داره مثلا هم گاز خرگل جبه خورده که بعد برونشیت مزمنم ایجاد میشه و بعد سرطان ریه و گایی چیزای دیگه حالا مباعثه خودم میخوام بگم تپش قلب از تا در دقیقه به صورت طبیعی گایی میاد رو 90 تا سد و بیستا، سد و چلتا که دیگه آدم ارجانسی میشه حالا این بزرگوارایی که فیبرازوریه میگیرم یا مثلا تومور پشت جناق سینه بزرگ شده مثلا وزنش سه کلو تا پنج کیلو اینا معمولا با یک سروم شششون تنفس میکنن حالا ما باید کاری کنیم هم رگ های لنفاوی باشه. هم تومور پشت جناق سینه برداشته بشه یا با جرایه کارنت یا با باز کردن رگ های لنفاوی بحث لنف یا که تو مباحثه ما تو پزشکی اسلامی و طب مکمل و گیایی بحث بلغم این بلغم بیاد و معتدل بشه حالا توی مباحثه ای ما این تی می فرح قلب بیاریم یعنی شادابی قلب از حیث زربان طبیعی در شرایط عادی هفتاد تا در دقیقه سنای متعارف در خواب عمیق میاد به شستا. حالا سیب یکی از داروهای مفیده گایی از بعضی ها قلبشون میره بالا عرقریزششون زیاد میشه کسایی که کم کمخونی شدید دارم چه به نوع فقر آهن و چه به نوع فقر ویتامین به دوازه اینها هم تپش قلبشون میره بالا زربان قلبشون میره بالا باید کمخونیشون درمان کنن درست شد حالا یکی از چیزایی که کمخونی فقر آهن رو درمان میکنه چیه؟ عسل. یکی دیگه چیه سیبه یکی دیگه چیه خورماست حالا میتونه اصل رقیق شده رو با شیر صبح بخوره، آب سیب رو شب بخوره، یک قاشق دیگه اصلا توش هم بزنه. تو آب آفرین، آفرین، بخوره. هم زرف عمومی بدنش خوب میشه، هم مشکل فقر آهن خوب میشه، هم تپش اضافی قلب نرمال میشه، کاهش پیدا هم. هم مومن و حفاظت از قلب میشه. طور مسلم مؤمنان یو بند میون صحبت شما چند تا پروکن به دلیل بخویم که چون مابحث دقیقاً همینه 09173770 بله. فرمودن سلام به حاجاقا بفرمایید تو رو به امام حسین همین حالا جواب ما رو بدهید آیا عسل را میشد به بچه‌ی دو ماه داد چطوری و چه مقدار بچه‌ی ما دختره حالا این چون اصل تأکید کردین حاجاقا اینو فکر می‌کنم بگیم خیلی خوب بشه به شما اسکنم که حکم عمومی در پزشکی جدید این است که تا 6 ماهگی کودک شیرخوار یگان غذای انحصاری کودک شیرخوار تا 6 ماهگی شیر مادره و هیچ غذا و ریزمغذی دیگر نبایستی جایگزین شیر مادر بشه اما اگر شرایط تغییر کرد مثلا بچه منحنی رشدش کم بود یا بچه وزنش کم بود مثلا یک و نیم کیلو یک و گرم به دنیا آمده حالا اینجا دکترای عزیز ما متخصصین متعهد در داخل خارج کشور این بچه گرا مولتی ویتامین میدن تصور کردید قطره آهن میدن حتی تو بحثای کم خونی خاص به نوع سوم یعنی آنمی اسید فولیک حتی یک چهارم قرص اسید فولیک در 24 ساعت یک بار میگن به این بچه بده در تخصصی اطفال در تخصصی این با بحث پزشکی کودکان تو بحثای عفونی یعنی فوق تخصصی های عفونی کودکان خب بعضی از مسائل ضد چرد و ضد عفونت رو تجویز می‌فهمانم حالا در تخصصی کودکان و فوق تخصصی بیماری های افونی کودکان زیر سن نشیش ماهگی میتوان اصل رقیق شده داد ولی به مقدار یک قاشق چای خوری یعنی یک قاشق چایخوری اصل طبیعی رو در نصف استکان آبجوش ولرم هم میزنید این نصف استکان آبجوش ولرمی که درش حل شده یک قاشق چای خوری عسل طبیعی در 24 ساعت این رو آفرین آروم آروم به صورت تناوبی یواش یواش میدیم اشکالی پیش نمیاد و از اون داروهای مکملی که بزرگوارا میدن مفید تره درست. حالا من که حاجی به سال بعد نباید حاجا به بچه بدن اصل ثقيله حتما دارنده معده حتی افرادی هم که بزرگترن اگر مثلا رفته اندوسکوپی کرده و پرزه های مهدش باشه اگر اصل همجوری بخوره استفراغ میکنه درست. چون عسل سقیله هزمش سنگینه حالا اگر مثلا با روغن کنجد قاطی بشه که اون کنجد و روغن کنجد بطیع الهزمه هضمش کنه، حالا معتدل میشه حالا نیست بچه کچیکه فقط رقیق شده در آبجوش بلرم خیلی باچکرم من یک بار دیگه شماره تماظهای برنامه آین سلاماتی رو اعلام کنم 511-225-41-53 225-41-69 225, 41, 53, 225, 41, 69, 225 41, میتونی تماس بگیرید منتظر تماظهای شما هستیم چون نزدیک به 10 دقیقه دیگه, دیگه میریم سراغ تلفن ها و تلفن ها رو پاسخ میدیم پیمکاتون هم که شماره پیمک 3059 ارسال بکنید و هر برنامه مثل امروز سعی می کنیم که ساله شما موضوع گواران رو بپرس خبا جواد 0.916 47.66 گفتن که برای لکنه زمان دختر 17 سالی که از بچگی این بیماری رو داشته و استراب شدید داره چه چیز تجویز می کنید در زم اضافه وزن 18 کیلوی هم دارن با تشکر کسانی که استراب دارن یعنی بیماری دلهوره دارن عربا می استراب ایرانی‌ها میفرمایند دلهره هر داشت یک چیز کسی که استراب داره تپش قلبش بالا میره حالا پیش یه متخصص قلب و عروق تشریف میبرید قرص ضد استراب میده طبق دوزج خاص که باید تپششو بیاریم پایین بعد این که فرمودین اضافه وزن 18 کیلو داره باید ببینیم آیا دیابت داره یا نه یا کمکاری تیرایید قده تیرایید که حالت بالپروانهی زیر سیب با آدم این تیزی روی گلو داره یا نه پس هم باید پیشی متخصص قلب و عروق بره تو بحث تقش قدر هم پیشی متخصص قدر بره ببینیم کمکاری تیرایید داره یا نه پروش شد بعد دوباره پیشی این متخصص قدر یا دیابت یا هورمون یا متابولیس پیرات حالا ببینیم آیا دیابتی هست یا نه؟ چون هر کدوم اینا یه مختصری با هم فرق میکنه اضافه وزش رو کاهش بدیم اگر شما از هیچ کنم این بیماری ها رو نداشت دیابت نداشت تصال فهم تپش قلبم نداشت فقط اضافه وزن داره اینجا غذاهای چرب و چیلیس نباید بخوره قندهای شیمیایی نباید بخوره و سانسای شیمیایی به نوع نوشابه گازدار آب میوه های شیمیایی نباید بخوره. جاش معومنا بعد از هر غذا یک سیب درختی. صبح که سه نماز صبح شد یا سحر یک دونه سیبم با شکم گرس نمیخوره. حال اگر مریض یوبوست یا نفخ شکم داشت، یه استکان آبسی به تازه سهر یا نماز صبح یکی بعد بر... آفرین آفرین سحری یا اول از اون صبح با چی گرسنه یکی بعد از صبحانه صبحانه زود بخوره اول آفتاب. یکی بعد از نهار یکی بعد از شام دوست. به دو ماه افراد بین 15 تا 20 کیلو وزن کم کردن پس افرادی که دیابتی هم نیستن بیماری های دیگه هم ندارن این داروشه که خدمتون گفتم اون سه چیزی که بده ترک کنه این سیبی که گفتم خوبه مصرف کنه حال اگر این مریض بزرگوار ما اضافه وزد که داره دیابت هم داره یعنی بیماری خون هم داره بله اینجا علاوه بر اون داروی طبیعی باید قرص متفورمین مصرف کنه متفورمین بله. نیست فرمودن دخترم هست به خاطر اینکه تختاناش کمکار نشه و کیست تختان ایجاد نشه حتما باید وزنشو کاهش بده برست. که بعدنا تو بحث ازدواج دوچار مشکل عقیمی نشود. حالا اینجا زیر نظر متخصص نازایی یا متخصص قدرت یا هورمون قرص شیمیایی متفورمین مصرف می‌کنن اما به صورت تناوبی بله. یعنی هفته اول روزی یک هفته دوم روزی دو تا هر 12 ساعت, بله. یعنی ساعت, ساعت یک هفته سوم روزی سه تا یعنی هر 8 ساعت هفته چهارم یکی کم میشه, میشه روزی دو دو. هفته پنجم میشه روزی یکی به صورت تناوبی چنین افراد دیابتی که اضافه وزن 15 تا 20 کیلو دارن بعد از دو ماه باز این بزرگوارا 15 کیلو قالبن وزن کم میکنن. نشالبا. خب خیلی ممنون همه جا یه سآل دیگه از میکنم. هفته پیش یه تماس گرفت با همین تلفن های شبکی که قطعا زینهی هم میکنن. سه پانسر یازه دویست و بیست و پنج چهل و یک پنج و سه. و بیست و, بیست و, بیست و, نه. و, و پنج پرسیدن که با همسرشون حالا اون... دعوان نمک زندگیه دیگه دعوان میکنن داره جره بحثی اگه دارند باعث میشه که ایشون خیلی عصبانی بشه و معمولا اعصابشون خوده من یادم رفت که بپرسم این هفته بیش یعنی زمان هم نداشتیم این بتونیم این هفته پاسخشون به شما احس کنم که گفتگوی مسالمت آمیز زن و شوهر یا پدر مادر یا اعضای خانو و خانواده مفیده و سازنده اما اگر دایلوگشون گفتگوشون جر و بحثای علکی لحویات لغویات یا پرخاشگری یا احانت به یک دیگر فحاشی اینا بسیار بده علاوه بر این که از نظر تخصصی علوم رفتاری رفتارهای منفیه علاوه بر این که از نظر اخلاق اسلامی اخلاق سیعه هست و جایز نیست علاوه بر این که تو بحث روانشناسی بالینی انسان رو از روان متعادل خارج میکنه و اختلالات روانی ایجاد و سپس تشدید میشه که خود این عوارض داره یکی از عوارزش چیه؟ جوش خوردنهای علکی و خودخوریای علکی و بحث بحثای علکی آجا گاهی سبب افت پلاسمای خون میشه تا صفای تلکه چنگ میشه قفر می کنه. سبب حاجر ترشحات اضافی اسید معده میشه و سرسوزه معده هارت برن ایجاد و سپس تشدید میشه چون غالبا نرسایی های غیر عضوی معده مربوط به اختلالات گوانیه. همچنین ضربان قلب تپش قلب بالا میره. پس با همین دیگه هم داره خب اصلا تو بحث شخصیتی افت شخصیتی میشه دوستان خوب و آدم کم میشن محبت دیگران به انسان افت پیدا میکنه افراد از انسان فاصله میگیرن پس نزاهه ها و جر و بحث های علکی خوب نیست تو اسلام هم میگه خوب نیست جامعه شناسی بالینی هم میگه خوب نیست علوم رفتاری هم میگه خوب نیست تخصصی قلب و عروق هم میگه خوب نیست. اما اگر گفتگو مسالمت آمیز باشه، یعنی دو نفری که با هم گفتگو میکنن، بناشون بر این باشه که حق روشن بشه، به حق عمل بشه. یعنی افراد حق محور و خدابین باشن. رو تلفن‌ها هم نزدیک بعضی‌هاش. پس این یک مطلب که به دست خودش تشدید زبان قلب و افت پلاسمای خون نکنه. نکن. بله. حالا این بزرگوارا ای بنقص ببینن، برطرف کنن یا اینکه از اول مثبت نگر باشن. خوبیای همدیگه رو ببینن، زن شوهر به خانو و شوهر، اعضای خانواده، اینجا مفرحه قلبه. بله، درست. می‌بینن چه جامعه خوبی دارن. بله. بعد غیر مستقیم، بله. بدون حفظ زدن گویی میشه ایب و نقص رو برداشت. کاری میشه با گفتگوی دوستانه بدون تخریب شخصیتی یک دیگر و حفظ احترام متقابل میشه اون عیب و نقص رو برداشت خب تماس تلفنی اولمون رو امروز از تهران بریم جناب آقای نادری پشت خط هستن دوستان آتاقا فهمان خطیشون رو بس کنن فماقه من شماره تلفن ها رو میخونم بله بس شد بله. شاید جهانی ولایت آی نادری سلام بفهمت سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ جا. سلامت باشین بزرگوارید. که محضرتون این که مورد یه آدم 64 پنج ساله‌ای هست. بله. که آنژیوگرافی کرده. گفتن یکی از عروقش 75 درصد، دو تا دیگه از عروقش بین 40 تا 60 درصد بستگی داره. بله. بعد خود خب همه داروهایی که میدن دیگه دین کیازه مو چه و چه باید این داستانا بله بله ما شنیدیم که داروهای گیاهی هستش که این گرفتگی رو رفع میکنه اگر اینطوره که چیه این دارو ولا که خیلی خیلی چشم و النا که چیزی چش التماس دارم فردا خساره چشم ششما فرست میکنم به احتیاطی فرست میکنم چک بله سرکار خانم موسوی از خوزستان هم پشت خط هستن تلفن اینشون رو هم پاسخ میدیم و بعد میریم سراغ پاسخ های جناب آقای زیای. سرکار خانم موسوی از خوزستان دوستانات و فهمه خطشون رو وصف میکنند پول های ارتباطی این برنامه 3511 خب خطشون و شد شرکه جوانی بلایات سرکار خانم موسوی بفهمت بله مشکل دستم هم سراب رفت هم هم هم بله ایشون وروره تقریبا یک سال هست که با کوفتگی کاود انجام میده چیزی رو جابجا بکنه یا بلرزونه درحال نفستش تاور از لوازم خنجرش دادن این مشکل تنفسی پیدا میکنه به خنجرشون میگه هم داره و هم اینکه نمیتونم خوب نفس بکشم بفهمید که من متوجه شدم که این شخصیت چند سالشونه پسرش این شخص، این عزیزمون که مشکل داره مشکل تخصصی دارن چند سالشونه او دادن شش ساله شه. شش سالشه. خیلی خوب متشکرم. ایشون سیگاری هم هستن در این داره اینو که این یه مورد دیگه قطعا بعد حل کنه. خیلی ممنون متشکرم. خداحافظ شما. دوست عزیز دیگه ای از تهران. بله حالا سرکار خانم موسوی از تهران حالا تماس گرفتن. دوستان اتاق فرمان خطشون رو بس میکنند ما این سه سالی که الان میگیم میگین متأسف میگین و بعد میگیم سراغ تماس‌های بعدی. بله سرکار خانم موسوی از تهران سلام علیکم بفرمایید خانم موسوی شااکی جوانی ولایت سرتون داریم بفرمایید خب بچه‌ها ارتباطشون خط دیگه اگه داریم دوستان طرف همون اگر نداریم که پاسخ این دو بزرگوار رو خب خط بعدی رو تا که بس میکنن بله سلام بفرمایید شااکی جوانی ولایت سرکار صایت جامعه علایثی هم داریم بفهمید الو الو بفهمید خودتونو معرفی کن من میکنم بله خودتونو معرفی کن. کن خانو. من هستم از اسبحان. از اسبحان. بله بفهمید خواب میکنم و بله داریم. بله رو آنتنه، ببخشید من خوش, خوش یه سوال داشته بله که امکانش هست بله بله بله. در رایت با موضوع قلب نیست ولی یه بیماری خاصه به نام لوپوس که من گرفتار شدم الان چند وقتی که متله شدم و دوکتران میگن خوشبختانه از نوع پوستیه یعنی به صورت هم زده سیستمیک نیست بله میخواستم خوش آقا لطف کنن من راه نمایی کنم، الان هشت ماه دارم دارو میخورم درسته. و این لکی هایی که به حساب دوچاره شدم و به صورت زده هیچی با این داروهای گران قیمت خارجی هم نمیره خیلی مقاومن درسته. و حالت بال پروانه رو صورتو گرفته از کنار چشما تا پیشونی درست ام... که بهتر بشید براتون دارم میکنم. از اگر که امکان داره حاج آقا معرفی منو حتماً. که من ببینم این داروی شیمیایی مثل این که میگن حالا حالا بعد ادامه بدید نه انشالله که بهتر همیشیم به راه نمایی آج آقا تشکرم که از تماستون خیلی ممنون و تماس بعدی جناب آقای فرزانه از قذبی فرمی که هم دوستان ها تو فهمون آخرین تماس باشه که برس کنم ما بتونیم پاسخ بدیم بله جناب آقای فرزانه سلام شرکه جهانی ولیت بفند آقای فرزانه، شاید جهانی به صداشو موز و گوار دارید. بفرمایید. هلو سلام علیکم آقای فرزانه. بفرمایید، در فرزانه نیست آقا. آجا آقا، آقا؟ حاج محمدی ها. آقای حاج محمدی. از کجا تماس میگیو؟ از کجا؟ از اصنجا. من از خیام می‌کنم. دوستان من اشتباه گفتم. بفرمایید، حالتون چیه؟ در در مورد چی ده؟ در, مورد. در مردان. درسته؟ خاصی دارید یا نه؟ نه بفهمید؟ تو از من خواین دارو هستم خیلی ممنون خب بچه‌ها چهار تا سوال دو تا سال اولش مربوط بود دوستان متفاهم میگه آخرین سال تلفن رو بگیریم باز بعدش جواب آخرین تلفن رو پس تایپ واس کنید که ما پاسخی کنیم خب اس نرم افزا رو فراموش نکنید 3059 ده میتونید نرم بر ما ارسال کنید در ابتدای برنامه چند تا از نرم افزات شما بزرگواران رو خوندم نرم افزاتون هم در ته برنامه‌ها برنامه‌رینده و برنامه‌های بعدش هر هفته چهارشنبه‌ها پاسخ میدیم اگه تلفن بعدی که حاضر ما پاسخ بدیم و ببینیم پاسخ ها خیلی خوب آقای جناب آقای نادری از تهران گفتند که مردی 65 ساله آنجیوگرافی شدن 75 درصد یک دیگه 85 درصد بستگی داره داروها شنا هم بردند دنبال داروی گیاهی. هستند این پدر بزرگوار شما که دوتا از رگهای کرانه قلبش به این مقداری که فرمودیم بسته شده و شیمیایی قندهای شیمیایی قضاهای چرب ترانس چربی بالا اینا براشون سمه و یکی هم کافئین زیاد یعنی چای، قهوه، شکلات، کاکائون، اسکافه. چربیای با ترانس بالا براشون بده فعلا فقط روغن زیتون، یک قاشق با نهار، یک قاشق با شام میخوره بقیه روغن‌های حیوانی و گیاهی جامد و مایه رو حس می‌کنه. قنده شیمیایی حس میشه، جاش قند طبیعی می‌ذاره. اسانس‌های شیمیایی هم مطلقا نمی‌خوره. یعنی آبمیوه‌های شیمیایی و نشابه های گازدار اینا نمیخواد. فست فودها ها صنعتی سنعتی رو میکنه اونها رو هم نخواهد داروش حاجه دو چیز با نهار و شام کاهو میخوره بدون سس. هر شب بعد از شام تا وقت خوابش به مدت دو هفته یک لیوان آب کرفس خام هفته سوام و چارام یک استکان آب کرفس خام هفته پنجام به بعد یک ساقه کرفس ساقه های روی کرفس و برگش بزرگس خورش سبزی بعد هر شب یک ساقه کرفس دندون نداره اون آب بگیری چه نصف استکان آب کرفس فواعد مختلف داره این بیمار عزیز ما یفتح السدات رگ‌های گرفته باز میشه. داروش همین. داروش خب جناب موسیوی از خوزستان گفتند که سرخان موسیوی از خوزستان گفتن که آقای 46 ساله تنگی نفس دارن اگه حرکت کوچیکی هم انجام میدن از ناحیه فوقانی سینه شون احساس تنگی نفس می‌کنن متأسفانه سیگاری هم هستن. که اینو حالا باید ببینیم که آیا آسم داره یا اصران نفس یا ویقون نفس تنگی نفس داره. باز این آسمش آیا خفیفه یا متوسط یا شدید درسته. مال ایشون ها جوا متوسط به بالاست اینه مطر دوم این که اگر محل کارشون گردخاک زیاده سیلیس موجود در خاک یا اگر مثلا شاتر نووا هستن و تنورهاشون سفالی یا گلی یا این چیزا هست در ایشون شاتر نوعه هست این هم مبتلا میشه حباب های هواییشون به سیلیس موجود یا اگر با دود برگ، دود چوب یا اگر مکانیک، تکنیسیان و مانند اینا هستن تو بحث هیدروکربان ها، مخصوصا دود گازاین یا این بزرگواری که فرمودن که این بزرگوار دیگه سیگاری هستن بحث دو خانیات بس که بس چار هزار بسن. نوع سم وارد بدن میشه و بیش از سی و سرطان میاره اینا ابتدائن مبتلا به آس میشن و بعد سرفه های مکرر مخصوصا هنگام خواب که گاهی مریض از خواب میپره کم کم برانشیت حاد و سپس برانشیت مزمن میگیرن و اگر ادامه بدن کم کم حالت این میشه که حوابچه های هوایی ریشون آب میاره و مبتلا به سرطان ریه میشه که هم میبینی علامت های چیزه دیگه هم میتونه باشه مثلا اضافه وزن خیلی بالا اکسیژن موجود در محیط افت کرده زیر 25 درصد یا شوشان آرستایی داره مثلا بچه جبهه بوده گاز خردل خورده مثلا. حالا پس اینجا دخانیات باید ترک کنی حتی کنار کسی که دو خانیاتیه نباید بشینی. اگر کسی هم پیپ یا چپاق یا قلیون یا سیگار میکشه نباید این محیط شما باشه بله بله. حتی در محیط اینا مثل آشپسخونه های اوپن سخ کردن یا تفت دادن نه که دوده ازیتش میکنه درست. یا حضرت خانومش که لاکش پاک میکنه از ستون اینا رو ازیت میکنه بله. یا مواد شوینده سفید کننده مخصوصا با اسید بالا یا تیزاب، آب جوال، وای تکس اینا مؤمن ها خبابچه های رو درگیر میکنه دلست. یا انواع اتکلون ها و عطرهای شیمیایی ایشون رو میکنه بله. پس عواملی که آس میاره و یا برونشیت حاد مزمن میاره یا آب آب ریه میاره اینا رو باید ترک کنه باید بله. بعد در درمانش حالا بینیم آسمش خفیفه یا متوسط یا شدید بله. اگر آسمش خفیف بود، دو استکان آب شلغم و دو استکان آب زردک. باید. اگر آسمش متوسط بود خوردانه که بیرجندی قاینی میگن اجگو. اگر آسمش شدید بود جوشانده برگ بارهنگ. باید. تو بحثای برونشیت عواملی که التهاب برونشیت میاره اونها رو باید ترک کنه که یه مختصری شماردن. و تو بحث برونشیت مزمه. و تو بحث های دیگه، مثل آب آوردگی ریه، در تمامی این موارد پیش متخصص ریه و یا فوق تخصصی ریه حتما باید مراجعه کرد. اگر بیمار حتی کودک هم باشه، فوق تخصصی بیماری ریه کودکان هم داریم. باید حتما مراجعه کنم، بعد چکاب تنفسی بشه، از حیست دم، از باز بازدم، بعد حالا ببینیم نارسایی در کدوم قسمت ها هم؟ اگر... گلوشون هم یه مختصری درد میگرف این بزرگوهای که گلوشون یه مختصری درد میگرف با اینکه یه مختصر راه میرد و نفس کم میابرد با... با... با... با... اینجا حتما پیش یک متخصص گوش و حلق و بینی یا فوق تخصصی حنجره حتما مراجعه کن گایی مثلا نارسایی هست در قسمت تارهای صوتی مثل ندول تارهای صوتی باید شناسایی گاهی بحث چسبندگی تارهای صوتی هست گاهی بحث آنجین گلو هست یا افونت های لوزه هست گاهی بحث دیفتری یا اختنا... احت... احتقان احتقان یا دیفتری هست خب اینجا باید شکاب بشه شنا... بعد دارو باید داده بشه آمد. از سر خود نباید خود درمانی کنم من از برای که دو دیگه بگیریم چون خیلی پره این کوتاه فقط سوال کوتاه پاسخ خیلی خوب خانم موسادی مجاهد از اصفهان مشکل بیماری داشتن که بیماری به اسم لوپوس اگر درست طرفش بزنیمت... یه متخصص قدد یا فوق تخصص قدد برن که ما در ایران بیش از 300 نفر فوق تخصص قدد داریم و بیش از 100 نفر فوق تخصص بیش از صد نفر و 300 نفر بیش از 300 نفر متخصص قدرت دارن بله این مربوط به قدرت زنانه میشه بله. از عیس تختان اینها و آیا هورمون استروژن زنانه شون نرمال هست یا نه یا کم شده بله. خب اینجا باید پیش یه بیماری بیماریهای زنان یا متخصص قدرت برن وقتی که یقین به لوپوس حاصل شد این داروایی که میدن مؤمنه داروهای سطحیه تا وقتی که اون مشکل قادت و مشکل هورمون حل نشه لوپوسش ادامه داره پس باید اون دو مشکل حل بشه اگر نه این دروهای سطحی که میدن مؤمنا این ظاهر پوستو روبران میکنه که قالبا سرزانوهاشون اینها شما از کنن پوست پوسته, پوسته میشه حالت پینه میبنده و ماننده اینها خب درمان یه سال یه تلفن بگیریم بعد پس ازدواج و... دیر نکنم بله. دوم اینکه مشکل هورمون زنانه حل بشه بله. قاعدگی های نامنظمشون حل بله. بشه و مشکل قده درون ریز تختان زن هم حل بله. بشه انشاءالله خب یه خط تلفن داریم سلام شرکه جهانی سلام علیکم بفرمی کنم بفرمی خواهم اسفانی از تهران بفرمی من مشکل همو بگم خدم بله در بله سمتون هستیم بفرم سرکتون زوانتنه بله ممنون من حدود سی و سالی که برم معده دارم البته اول نمیدونستم اول سردرد میگرفتم به حالت میگرنی بعد متوجه شدم که این از مردمه. بله بعد دیگه شروع کردم یه مقدار ملاحظاتی و سردتم خدا رو شکر بهتر شد البته خوب تواصلم جستم به مرسومین اونم خیلی کمکم کرد بعد بعد متوجه شدم که سیب زمینی خیلی عذیاتم میکنه اونو قصد کردم باز شدم بانه. ولی الان گاز میدروده خیلی زیاد دارم دلستم. که همطور بی اختیار ازم دفت میشه بانه. بعد شکم شکمدر دارم مخصوصا عصبی که میشم یو سب به هم دست میده بانه. پلک میزنه چشمام دلست. حالتهای خیلی بدی دارم گاهی چیزایی رو میخورم که ممکنه برام خوب نباشه ولی خوبم هم. گاهی همونم هم عذیاتم هم میکنه بانه. خب خیلی مشکلات دارم خیلی ناراحتم دکترم فراوون رفتم همین داروهای معمولی معده بهم میدن ولی هیچ اثری نداره درست. نمیدونم باید چیکار کنم ان الان هاج آقا یه راه درست ان شاء الان هاج آقا درسی برنامه رو دیدم ببینم باهاش صحبت کنم و مجاکر. یه درمانی بهم معرفی کنه متشکرم از تماستون خیلی ممنون از شما خداحافظی می‌کنم کنم خدا نگه ان شاء الله که گر. قدر گرنگقدر برنامه نسخه ای رو به شما ارائه میکنم و میتونید استفاده کنید سرکار خانم ملکوتی هست تهران تلفون بعدیمون هستن سرکار خانم ملکوتی سلام بفهم میشه ای که جمعی ولی یا دخیمتون خانم ملکوتی سلامتون علیکم بفهم سلامت بکنم سلامت باشیم من سه تا سوال از خجام رو دارم سه تا زیادی داریم یا بناشه این من خودم مشکل آلرژی دارم چند سال هم درگیر هستم باید. مدام دیمیم نوکیره اگر سیکسیزی مستفاده کن تا موقع که استفاده میکنم خودم باید, باید. مصورت مشکل دارم مشکل دوبا این سوالم اینه آیا دابه یه خاصی برای این بس. مورد وجود داره مشکل دوبا میکنم کنم خیلی بد خیلی بد نفس می کشم خیلی دیگران رو عذیت می کنه یکی این مورده خواهرم بوی دهانشون بوی بدیه خیلی هم نضافت رعایت میکنن مدام نسباش می‌زنن مدام دهنشون می اما خب بوی بدی داره دهنشون بعد یکی نمی که بند خوده اصلا مشکل یه دارن خیلی مشکل بود چاقه بی خودی مثلا بی خودی چا. اصلا نمی‌خوره. بازه خب خیلی چاق میشه وقت چون به خاطر این سموم دفت نمیشه استمالا یعنی خود رو فکر میکنیم به خاطر این باشه بعد الان اگر بتونن آجا رو کمک میکنم ممنونی باز کنم زحمت میکشمی ساعت این برنامه رو اعلام بخارمیت چون من خیلی تصادفی دیدم زمان برنامه خیلی تصادفی برنامه رو نمیشم ممنون خیلی ممنون من فقط خیلی خوشحال هستم. کار خانم ملکوتهی ما چهارشنبهها ساعت هفت و نیم بهینه هفت و سی دقیقه تا هفت و سی و پنج دقیقه داخلش ما مزاجی اولا مدتی یک ساعت هستیم. همچنین سه تا سال یشم پرسیدن و دو تا هم از قبل داریم و تو پرنگرکل یک سال خیلی مشترک داریم. اینی این که در مورد پرسید خیلی سال کردن همین از پرسیدن همین که سه تا داریم در مورد پرسید داریم. خیلی کوتاه بگید که کنه همه سه دیگه وقتی روی یه جوری بگیم که فکر نکنم که برستیم بله یازده دوازده چیز پرستاد میاره قن شکر شنجات قننادی ها. شوری زیاد کم تحرکی نگهداری منی نگهداری ادرار اضافه وزن بیش از 15 کیلو اینا همه عواملیه که تلرم پرستاد در مردان و پسران میاره درمان 29 درمان داره حاجا یه برنامه از بعد از استپاد خیلی که پسش اونا رو بزیر برد برد بزیر بده این داره, هم داره. داره آسونش مثلا اه. یه با پوستش بعد از شام بخوره, بخوره. بخوره. شب تورم پروستاتش خوب میشه بیماری برگشت پذیر برگشت پذیر خانم سال گفتم برنامه میده دارم یه کوتای معده مده این اشتباه مشهوره که به زبون مبارک دکترا هست سپس به زبون مردم افتاد اولش هم از انگلستان ایجاد شد 70 سال قبل این ور در تخصصی گوارش و فوق تخصصی کبد میگیم ناراحتی های غیر عضوی معده و این بزرگوار ازدیاد گاز معده داشت و قرغیره های بذار مبتون نفخ شدید, شدید. بله. و قرار و قرار قرار های شکن و مبتون شده بود بله. بی اختیار از من خارج میشه بله. یه بار شخصی با اندام تحتانی میخوره زمین نردبون پله اینا که ضربه میخوره در اثر تصادف که بعضی بعض عملهای پایین تنه سبب میشه که بله. اینطور بشه بله. تصادف فهم و گایی در شرایط عادی که هیچ بیماری زمینه ای نباشه ازدیاد گاز معده سبب میشه که این حجیم شدن معده پرده دیافراک حالت تحدبی بگیره و شش ها حجمش کم بشه تو دریافت اکسیژن، شخص احساس کم آوردن نفس میکنه بله. حالا باید ازدیاد گاز معده از بین ببری مشابه های گازدار، دوغ گازدار، پوست حبوبات که سیلیس داره نفاخه اینا رو نباید بخوریم مواد نشاستهی مثل برنج، ماکارونی، سیبزمینی و کوکو زمینی نباید بخوری اگر میخوری باید باش زیره سبز، زیره سیاه و بادیان رومی بخوری و همچنین بعد از غذا شربت گیاهی گریپواتر یا قوی ترین داروهای شیمیایی تره جنری که ایران هست دایمیتیکونه قطره دایمیتیکونه فعال شده قرص جاویدانیش فکر میکنم باید درده این قطره برای که سریع از جدار روده کوچیک جذب دستگاه گرده شد خون بشه و از سرگذاری باشه آنه. سنای این بزرگوارو هر 8 ساعت 20 قطره سنای کودکان زیر 6 ماهگی هر 8 ساعت 10 قطره نفخ شدیدشون هم خوب میشه. از سه سوال پرسیدن خیلی کوتاه در حد نهایتن یک دقیقه مثلا که آلرژی داشتن و صداشون نمیخوام خب. آلرژی ما مون نو عامل آلرژن زا یعنی عوامل حساسیت زا حالا حساسیت اون عامل چه باید پیدا کنید اینکه سوال فرمودی بعد اون عاملی که باعث طرف خوب میشه درست میگوسم نو... آره رفته به دوازش پس اینجا دفعیم. ممکنه حساسیت فصلی باشه ممکنه به گرد خاک، به گردهای گلها، حاگه ها حساسه ها اینجا وقتی منزل بیرون میاد این دستمالشون مرتوب کنه شلوی بینی و دهنش بگیره یا ماسک بزنه این ماسک کاغذی مقابلی است که دو ساعت جواب میده پر دو ساعت باید عوض میشه خود یکی م... دیگه این که آجوام دوبامیش که بحثه فکر میکنم از دو تا سوال بزنیم برای هفته بعد سرکار خانم مرکوتی منتظر باشن. هفته بعد چهارشنبه ساعت 7 همون ساعت 7 و در فردا شما وزیدا هم ببینید اجازه دارید داق تو زمان ندریم اللهم صل علی محمد و آل محمد المعجم فرجام اللهم اشف مرضانا و امراضنا بحق محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد اجازه بدم متکلم دعا روی میکنم انتظارم را من به امید این که ببینم روی او را ناله امن ام یا کنم. میکنم با و دعا برای تحجیل در فرج حضرت ولی از اجل الله تعالی فراج شریف تا چهار شنبه دیگر برنامه آین سلامتی از شبکه جهانی بلایت شما و زرگوانان را به خدا یک تمس خدا یار و نگهتار